قصه ها و افسانه های مردم فرانسه نویسندگان شارل پرو و مادام اولنوا ترجمه فرهاد فراهانی و نعمت الله یا پور ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افثانه ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده ناهید الیاسی سلام، سلام به تویی که الان اینجایی در دنیایی پر از صدا و شلوقی اومدی تا برای چند لحظه با یه قصه کمی آروم بگیری من ناهیدم و قرار برات یه افسانه تعریف کنم افسانهای نه از اون جنس که فقط توی کتابا خاک میخوره بلکه از اونایی که لابلای دلا پنهون شده از اونایی که گاهی شبیه زندگی خودمونن تلخ، شیرین، عجیب و گاهیم شبیه رویا پس آیا آماده ای چشمات رو ببند و به صدا گوش بده و بذار با هم وارد جهان قصه بشیم این داستان زیبای متلائی روزی روزگاری شاهزاد خانم بسیار زیبایی زندگی می کرد. که کسی به زیبایی اون نمی رسید لباسای خانم مارواری دوزی شده بود و موی طلایی و فرفریش تا پایین پاش میرسید. رسید و بر سرش تاجی از طلا داشت به این دلیل به اون زیبایی مطلایی می گفتن. در همسایگی زیبایی مطلایی پادشاه جوونی زندگی میکرد که بسیار ثروتمند و باهوش بود پادشاه جوون که هنوز زن نگرفته بود وقتی وصف زیبایی متلایی رو شنید یه دل نستد دل عاشق اون شد و تصمیم گرفت با فرستادن پیکی از اون دختر خاستگاری کنه. به فاصله چند روز پیک پادشاه به همراه تعداد زیادی از ندیمه ها و خدمتگزاران و صد رس، اسب و کالسکه مجلل، عازم کشور همسایه شد که با رفتن این کاروان تمام حرف درباریان خواستگاری از مطلائی بود و بحث. پادشاه هم که مطمئن بود شاهزاده خانم مطلائی درخواست اون رو رد نمی کنه دستور داد هنرمندان و خیاطان لباسهای زیبا بدوزن و مبل‌های مجلل بسازن. پیک پادشاه پیغام اون رو به مؤتلایی تقدیم کرد. شاهزاده خانم ضمن تشکر از پادشاه پاسخ داد که تصمیم به ازدواج نداره. کسی نمیدونه که چرا پاسخش منفی بود. شاید توی اون روز حال و احوال درستی نداشت. شاید هم در تقدیم پیام پادشاه تشریفات معمول رعایت نشده بود. فرستاده پادشاه که مجبور شد بدون شاهزاده خانم برگرده تمام هدایا از جمله الماس‌های گرانبهایی رو که به دستور پادشاه برای تقدیم به شاهزاده خانم برده بود رو با خودش برگردوند چون شاهزاده خانم دختر عاقل بود و اعتقاد داشت نباید از مردان مجرد هدیه‌ای بپذیره وقتی فرستاده دربار پیش پادشاه که با بی در انتظارش بود برگشت از اینکه زیبای موطلایی را با خودش همراه نداشت به شدت ناراحت شد. توی دربار پادشاه مرد جوانی بود که صورتش مثل خورشید درخشید. اون خوش قیافه ترین مرد اون قلمرو بود و مردم به خاطر شخصیت آرومی که داشت اون رو حرف شنو مینامیدند. همه حرفشنو رو دوست داشتن و تنها حسودان بدتینت که علاقه پادشاه رو به اون میدیدند از این مورد مستثنا بودند. حرف از جمله افرادی بود که در مورد بازگشت فرستاده پادشاه و رد پیشنهاد ازدواج از طرف شاهزاده خانم صحبت میکرد و میگفت، من مطمئن هستم که اگر پادشاه منو به خاستگاری زیبای متلایی میفرستاد، الان موفق برگشته بودم. بدخواهان با شنیدن این حرف بیدرنگ پیش پادشاه رفتن و گفتند: اولیا حضرتا ها میدونید که حرف شنو چه حرفایی میزنه؟ میگه که اگر اون رو نزد زیبای متلایی فرستاده بودید، حتما اون رو با خودش میابه. همچنین این آدم خیره سر ادعا میکنه که از شما خوشتیبتره تره و شاهزاده خانم به خاطر عشقی که به اون داره حتماً به دنبالش میومد پادشاه حسود با شنیدن این خبر بسیار غضبناک شد و گفت که اینطور این مردک به سرنوشت بد من میخنده و باورش شده که از من بهتره در اولین فرصت باید اون رو توی برج بزرگ زندونی کنیم تا از گرسنگی بمیره ماموران پادشاه پیش حرفشنو رفتن و اون رو بیگناه به زندون انداختن جوونه که بیچاره روی کاه میخوابید و از چای کوچک آب میخورد اما غذایی نداشت و از گرسنگی و بیحالی بیرمق شده بود حرف شنو پس از دو روز از اون ماجرا در حالی که رنگ و روی به صورت نداشت نالکنان گفت پادشاه چرا به من غضب کرده؟ اون که فرمانبر با مثل من نداره؟ من که علیه اون کاری نکردم تو این زمان از قضا پادشاه از کنار برج رد می‌شد و ناله ها و شکوه های حرفشنو را شنید از کرده خودش پشیمون شد و دستور داد دروازه برج رو باز کنند و زندونی رو به حضورش بیارند حرفشنو با قیافه زار و نزار جلو اومد به زمین افتاد و پای پادشاه را بوسید حرفشنو گفت از من چه خطایی سرزده که این چنین باید منو آزار شکنجه کنید. پادشاه گفت: «تو فرستاده منو مسخره کردی. به اون گفتی که اگر تو رو پیش اون زیبای مطلای میفرستادم حتما اون رو با خودت میآوردی. چون کسی یارای مقاومت در برابر تو رو نداره. حرفشنو گفت: « پادشاه ها این حقیقت داره. چون من قادرم صفات خوب شما را اونچنان با آب و تاب بگم که شاهزاده خانم به هوای دیدنتون پرواز کنه و هیچ حرفی نزنه. پادشاه با شنیدن این حرف متوجه شد که حرف حرفشنو جز خیر و صلاح اون هدف دیگه ای نداشته و حسودان با بدگویه های دائم خودشون هدف شومی رو دنبال می بنابراین، حرف شنو را همراه خودش برد پس از صرف شام گفت حرفشنو شنو من هنوز زیبای مطلایی رو دوست دارم ولی نمیدونم چیکار کار کنم که با من ازدواج کنه میخوام تو رو بفرستم شاید بخت با تو یار باشه حرف شنو گفت که من برای فرمان برداری آماده به خدمتم و فردا را میافتم پادشاه گفت پس صبر کن تا همراهان کافی در اختیارت بذارم. حرفشنو گفت، نیازی به این کار نیست قربان، من فقط یه شمشیر مناسب و تیز و نامی از شما احتیاج دارم. صبح روز دوشنبه بود که حرفشنو از پادشاه خداحافظی کرد و تنها و بدون کبکبه و دبدبه سفر خودش رو آغاز کرد. اون توی راه توی این فکر بود، که چطور زیبای متلایی را برای ازدواج با پادشاه متقاعد کنه قلم و کاغذ هم همراه داشت و هر وقت فکر به درد بخوری به ذهنش می رسید از اسب پیاده می زیر سایه درختی می نشست و اون رو مینوشت. یه روز که فکر خوبی به ذهنش رسید از اسب پیاده شد و کنار برکهی زیر سایه یه درخت نشست و اون رو بر روی کاغذ آورد. به اطراف خودش نگاه کرد و مجذوب طبیعت شد. ناگهان چشمش به ماهی زیبایی افتاد که روی علف ها کنار برکه افتاده. ماهی نفس نفس میزد و با مرگ دست و پنجه میکرد. کرد. حرف شنو دلش به حال ماهی سوخت اون رو برداشت و با احتیاط به آب انداخت. ماهی تا به آب تازه رسید شاداب و سرحال به اماق آب رفت و لحظه ای بعد کنار آب اومد و به حرفشنو گفت از تو به خاطر محبتی که به من کردی بسیار متشکرم. بدون تو من الان مرده بودم. تو من نجات دادی و مطمئن باش. هیچ وقت این لطف تو رو فراموش نمی کنم. بعد دوباره زیر آب رفت و حرف رو تنها گذاشت. هر شنو روز بعد در ادامه سفر خودش کلاقی رو دید که به خطر بزرگی گرفتار شده بود. اقاب بزرگ اون پرنده بیچاره را داشت تعقیب می کرد و نزدیک بود اون رو شکار کنه و بخوره. حرفشنو دلش به حال کلاق سوخت تیری به سوی اوقاب زد. تیر، به سینه اقاب خورد و اون رو زمین انداخت. کلاق جون سالم به در برد و خوشحال و خندون روی شاخه درخت نشست و گفت آقای حرفشنو، عجب مرد خوبی هستی. تو از من که کلاق بی مقداری بیش نیستم دفاع کردی و منم ناسپاس نیستم. هرگز این محبت تو رو فراموش نمی کنم. حرف شناف فهم و درایت کلاغ رو تحسین کرد و به راه خودش ادامه داد صبح زود به جنگلی رسید هوا هنوز تاریک بود و راهش را به سختی پیدا می کرد. ناگهان صدای جیغ و داد جغدی رو شنید به دنبال جغد همه جا سرک کشید تا سرانجام اون رو که توی دامی گرفتار شده بود پیدا کرد بیدرنگ چاقوش رو به دست گرفت و بندار رو پاره کرد. جغد آزاد شد و به سمت آسمون پرواز کرد. دوباره پایین اومد و به حرفشن شنو گفت من توی دام سختی گرفتار بودم و اگر کمک تو نبود الان مرده بودم. از ته قلبم از تو سپاس گذارم و قول میدم هیچ وقت این لطف تو رو فراموش نکنم. اینا سه اتفاق عجیبی بود که حرفشنو در طول مسافرت خودش با اونا مواجه شد. اون روز بعد به قصر شاهزاده خانم رسید. توی اونجا همه چیز مرتب و منظم بود و تا چشم کار میکرد الماس و لباس‌های فاخر و طلا و نقره و جواهرات بود. حرفشنو فکر کرد که باید خیلی مسلط مرتب و خوششانس باشه تا بتونه این شاهزاده خانم رو با ازدواج با پادشاه راضی کنه بنابراین لباس زرباف پوشید پرهای سفید و قرمز به کلاهش زد صورتش رو شست سرش رو شونه کرد و شنلی زیبا به دور خودش بیچید که سبد کوچیکی به اون وصل و طول سگی هم در اون بود حرفشنو به حدی و با شخصیت بود که به محض رسیدن به دروازه قصر نگهبانان در برابرش تعظیم کردند و بیدرنگ خبر اومدن اون رو به زیبایی متلایی رسوندن. شاهزاده خانم تا نام حرفشنو رو شنید به ندیمه هاش گفت لباس رسمی منو که از اطلس آبی بافته شده رو بیارید. موهای طلائیم رو ببافید و تاج گل سرخی رو هم بر سرم بذارید. اون باید همه جا تعریف کنه که من واقعا زیبا هستم. حرف شنو رو به تالار پذیرایی راهنمایی کردند. اون با دیدن شاهزاده خانم آنچنان مسحور جمالش شد که به لکنت افتاد. اما خودش رو جمع جور کرد و از شاهزاده خانم تقاضا کرد اجازه نده که دست خالی به کشورش برگرده. شاهزاده خانم گفت: حرف شنوی عزیز، تمام دلایلی که آوردی همه درسته. من دوست دارم شما را مشمول لطف خودم قرار بدم. اما ابتدا باید وظیفه‌ای رو انجام بدیم. ماه پیش که من و هم کنار برکه قدم می‌زدیم، انگشترم رو که خیلی دوست داشتم از انگشت در آوردم. متاسفانه اون انگشتر توی برکه افتاد و گم شد. این موضوع خیلی منو ناراحت کرده. به این دلیل تصمیم گرفتم تا پیدا نشدن انگشترم دست رد به سینه خواستگارانم بزنم. حالا این گویو این میدان. اگر انگشتر رو پیدا کنی با پادشاه ازدواج کنم. وگرنه جوابم منفیه. حرف شنو از چنین جوابی بسیار متعجب شد و محترمانه شاهزاده خانم تقاضا کرد که طول سگ شنل و سبد کوچک رو به عنوان هدیه پادشاه قبول کنه. اون پاسخ داد که هدیه قبول نمیکنه و بهتره که به حرفی که شنیده عمل کنه. حرف شنو اون شب بدون شام سر بر بالین گذاشت. حتی طول سگی که اسمش رو گابریول گذاشته بود هم میلی به غذا نداشت و کنار اون دراز کشید. هر شنو تمام شب فکر میکرد و با خودش می گفت من چطور میتونم آخه انگشتری که یه ماه پیش توی برک افتاده رو پیدا کنم. این کمال حماقه که دنبال اون انگشتر بگردم. شاهزاد خانم این درخواست عجیب و غریب رو برای رد کردن پیشنهاد من مطرح کرده. گابریول حرفای اون رو شنید و واق کنان گفت سرور من خواهش میکنم ناامید نشید. شما آدم فهیم و با شخصیتی هستید. با اومدن صبح به کنار برکه میریم و تلاش خودمون رو میکنیم. حرف شنو سگ رو نوازش کرد و به خواب رفت. نزدیک صبح گابریول از جا پرید و اونقدر سر و صدا کرد تا اربابش رو بیدار کرد. بعد گفت: سرورم لباست رو بپوش تا را بیفتیم. حرفشنو موافقت کرد و بلند شد و لباسش رو پوشید به کنار برکه که رسید بالا و پایین رفت و. توی این فکر بود که اگر موفق نشه با چه جرعتی به صورت پادشا نگاه میکنه. ناگهان صدایی به گوشش خورد. حرف شنو، حرف شنو. به اطراف نگاه کرد اما کسی رو نمیدید. فکر کرد داره خواب میبینه و به قدم زدن ادامه داد. اما اون صدا رو دوباره شنید. حرف شنو، حرف شنو. اون از سگ خودش که به دقت به آب نگاه میکرد پرسید گابریال کی در آخه من صدا میکنه؟ سگ گفت ارباب: اون ماهی رو نگاه کن لحظه بعد ماهی ظاهر شد و به حرف شنو گفت تو جون منو نجات دادی بدون تو من مرده بودم من تو رو فراموش نمیکنم بیا بیا حرف شنوی عزیز اینم انگشتر زیبای مطلایی حرف شنو بیدرنگ به قصر برگشت به زیبایی مو خبر دادند که اون درخواست ملاقات داره شاهزاده خانم اجازه داد و اون زمن تقدیم انگشتر گفت ای شاهزاده خانم درخواست شما رو من انجام دادم آیا الان مایل هستید که تقاضای پادشاه منو قبول کنید شاهزاده خانم وقتی انگشترش رو دوباره دید به قدری خوشحال شد که فکر کرد داره خواب میبینه. اون با تجلیل از شنو گفت این کاری فرشته است وگرنه شما به هیچ وجه قادر به انجام این کار نبودید. شنو گفت شاهزاده خانم من هیچ فرشته ای نمیشناسم. من به تنهایی به دنبال انگشتر گم شده شما رفتم. شاهزاده خانم ادامه داد شما باید کار دیگه ای را انجام بدید وگرنه دوباره جواب من منفیه شاهزادهی به نام فورس که توی این اطراف داره زندگی میکنه، تصمیم گرفته با من ازدواج کنه اون نقشه تهدیدآمیز برام کشیده و گفته در صورتی که حاضر به ازدواج با اون نباشم قلمروی روی فرمان پدرم رو نابود میکنه. اما من دست رد به سینش زدم میدونی اون یه قول آدم خاره. بلندتر از برج کلیساست و شبیه خوکهای بلود خار. اون بلند حرف میزنه که آدم کر میشه. من به اون اطلاع دادم که تصمیم به ازدواج ندارم ولی اون دست از تهدید من بر نمیداره و مردم من رو داره میکشه. تو باید اون رو به قتل برسونی و سرش رو برام بیاری. حرفشنو از این شرط جا خورد لحظه فکر کرد و گفت بسیار خوب شاهزاده خانم من با گالگنفورست فورست می‌جنگم البته اون بر من غلبه میشه، اما من مثل یه مبارزه قهرمان با مرگ نبرد میکنم. شاهزاده خانم حیرت زده و ناراحت سعی کرد حرفشنو را از اون تصمیم مرگبار منصرف کنه اما فایده ای نداشت. بنابراین حرف شنو به اتاق خودش رفت تا شمشیر و لوازم دیگهش رو برداره. گابریول رو توی سبت گذاشت بر اسب زیباش سوار شد و به سوی سرزمین گالگنفورست به راه افتاد. توی مسیر راه به هر کی که می رسید سراغ گالگن رو می گرفت. جواب همه این بود. پادشاهی شیطان جنایتکار و بیرحمه که کسی جرأت دیدن اون رو نداره. اون هرچی بیشتر از این حرفا میشنید ترس و وحشت بیشتری وجودش رو می گرفت. اما گابریول اون رو آروم می کرد و میگفت، ارباب: وقتی با اون در جن کسید من پاش رو گاز می گیرم و اون مجبور میشه سرش رو خم کنه. به خاطر اینکه من رو از خودش دور کنه اون لحظه شما میتونید راحت اون رو به قتل برسونید حرفش از فهم و سگ شگفت زده شده بود اما خوب میدونست که کمک اون کارساز نیست سرانجام به قصر گالگن رسید تمام طول راه پر از استخون جمجمه انسان بود استخون و جمجمه بی هایی که به دست آدمخوار تکه پاره شده بودند هر شن و لحظهی بعد آدمخوار رو دید که از جنگل داره برمیگرده از بلندترین درخت‌ها هم بلندتر بود و با صدای خشن این سرود رو داشت می‌خوند برای خوردن دختران و پسران کوچک میخواهم سراسر جهان را چهارنال بروم. باید همه آنها را بگیرم و از خوردن خونشان جان تازه بگیرم. بلافاصله حرف شنو با همون ریتم شروع به خوندن کرد. بیا حرف شنو رو در اینجا ببین که به جنگ تو آمده است. او خیلی بزرگ و قدرتمند نیست، اما با جسارت و شجاعت به تو حمله خواهد کرد. گالکن فورست تا این آهنگ رو شنید به اطراف خود نگاهی کرد و وحشیانه نرهی کشید. ناگهان چشمش به حرفشنو افتاد که با شمشیر ایستاده. حرفشنو حرف دیگه ای نداشت که بگه ولی همون آهنگی رو خوند که آدمخار رو خشمگین کرد. پادشاه گالگن فورست با دهان کف کرده گرز بزرگی رو برداشت تا هرشنو رو با یه ضربه تیکه تیکه بکنه. اما تو این لحظه کلاقی روی سر آدمخار نشست و به چشماش نکی زد. صورت آدمخار پر از خون شد و به اطرافش مشت و لگد انداخت. هرشنو از چنگش رها شد و با خنجر ضربه محکمی به اون زد. بلاخره آدمخار با بیش از هزار زخم و غرق در خون به زمین افتاد و با زربهی به هلاکت رسید. کلاخ که روی درخت نشسته بود هرشنو رو صدا کرد. و گفت من کمک تو رو فراموش نکردم. وقتی جون من توی خطر بود تو به من کمک کردی. منم به تو قول دادم تلافی کنم. فکر می کنم امروز دینم را ادا کردم. حرف شنو گفت من جونم رو مدیون تو هستم کلاق عزیز. مطمئن باش تا آخر عمر محبت تو رو فراموش نمی کنم. پس از اون با چابوکی سوار اسب شد. سر گالکن گالکنفورت رو برداشت و به سوی قصر شاهزاده خانم رفت. مردم به استقبالش اومدن و فریاد زدند زنده باد حرفشنوی دلاور که گالکن را کشت شاهزاده خانم که صداها رو شنید ساکت و نگران از جا تکن نخورد توی این فکر بود که حتما حرفشنو کشته شده اما یکباره اون رو به همراه سر آدم در مقابل خودش دید هر شنو با دیدن شاهزاده خانم رشته سخن رو به دست گرفت و گفت شاهزاده خانم دشمن شما مرده امیدوارم دیگه تقاضای پادشاه من رو رد نکنید شاهزاده خانم گفت با تمام این احوال چنانچه موفق شدید برآمد چشمی سلامتی آب بیارید به پیشنهاد شما حتما جواب مثبت میدم میدونید تو این نزدیکی ها قار عمیقیه که شش کیلومتر طول داره. تو دهنه قار دوتا تا خوابیدن خوابیدن که ورود به غار رو غیر ممکن کردن. اونا چشما و هنجرهای آتشین دارن. هرکس بتونه از کنار اونا بگذره و داخل قار بشه از حفرهی سردر میاره که پر از قورباغه ها و مارهای سمیه. در انتهای غار سردابی وجود داره که توی اون چشمه سلامتی میجوشه من از این چشمه آب میخوام میدونی هر چی رو که با اون بشوری زیباتر میشه و هر کس هم از اون آب بنوشه اگر هم زیباست زیباییش جاودانه میشه و اگر هم زشته زیبا میشه اگر جوون جوونتر و اگر پیرم هست جوون میشه شما میتونید حرف من رو باور کنید آقای حرفشنو من تا زمانی که از این آب ننوشم سرزمین خودم رو ترک نمیکنم حرفشنو گفت شاهزاده خانم شما اونقدر زیبایید که نیازی به اون آب ندارید من فرستادهی ضعیفم به نظر میرسه تقاضای شما سر من رو به باد میده من اون چرا که شما آرزو کردید رو فراهم میکنم اما به احتمال قوی سرم رو به باد میدم زیبای موطلایی بر حرف بی منطقه خودش پافشاری کرد و حرف شنو با سگ کوچیکش به دنبال چشمی سلامتی روون شد اون رفت و رفت تا به کوه بلندی رسید برای رفع خستگی نشست اسبش رو برای علف خوردن فرستاد و گابریول هم دنبال مگسا رفت اون میدونست که چشمه سلامتی زیاد دور نیست سرانجام چشمش به ای به سیاهی مرکب افتاد از اون صخر دود غلیزی برخاسته بود بلافاصله اژدههایی رو دید که از دهنش آتیش بیرون میومد اون بدنی به رنگ سبز و زرد و چنگالهای وحشتناکی داشت و دم سیاه و دراز خودش رو به اطراف میکوبید گابریول اون حیولا رو دید و از ترس به دنبال پناهگاه امن بالا و پایین رفت هفشنو راضی به مرگ شده بود شمشیرش رو کشید و با بطری کوچیکی که شاهزاده خانم به اون داده بود برای آوردن آب پایین رفت تو این لحظه به گابریول گفت نگه وفادارم دارم دقت کن که کار من تمومه. من هیچ وقت به آبی که اجدها داره از اون پاسداری میکنه نمیرسم. پس از مرگم این بطری رو از خون من پر کن و برای شاهزاده خانم ببر تا ببینه که برای چه جان فشانیایی کردم. اون وقت پیش پادشاه برو و داستان ناکامی منو براش تعریف کن. تو این هنگام کسی اون رو صدا زد حرف شنو حرف شنو حرف شنو با خودش گفت یعنی کی داره منو صدا میزنه حرف شنو به حفره که روی درخت کهنسالی بود نگاه کرد جغدی رو دید که داره با اون حرف میزنه جغد گفت تو من رو از دام سیاد آزاد کردی و جونم رو نجات دادی من در مقابل کمک مهمی که در حقم روا داشتی، قول دادم این محبت تو رو تلافی کنم. الان زمان اون رسیده، بطری رو به من بده، من تمام راه های پیچ در پیچ قار رو بلدم و میتونم آب حیات رو برات بیارم. حرف شنو بیدرنگ بطری رو به اون داد و جغد به داخل قار رفت. دو تا به اون توجهی نکردند. پس از چند دقیقه بطری رو پر از آب حیات کرد و برگشت. هر شنو که از شادی توی پوست خودش نمی گنجید از سمیم قلب از اون تشکر کرد. بطری رو از جغد گرفت و به سوی شهر به راه افتاد. یک راست به قصر رفت و بطری کوچیک را تقدیم زیبای موتلایی کرد شاهزاده خانم که دیگه دلیلی برای تفر رفتن نداشت از حرفشنو تشکر کرد و دستور داد وسایل سفر را آماده کنند بعد به همراه حرفشنو راه افتاد و پس از چند روز به حضور پادشاه رسیدند پادشاه که میدونست بالاخره روزی زیبای موطلایی رو می‌بینه به استقبال اون رفت و هدایای ارزنده ای تقدیمش کرد مراسم عروسی مفصلی برپا شد اما زیبای موطلایی که از ته دل هرشنو رو دوست داشت به پادشاه گفت اگر هرشنو نبود من اینجا نمی‌اومدم اون دشوارترین این ها رو با موفقیت به انجام رسوند. شما باید تا ابد از اون سپاسگزار باشید. اون آب حیات رو برای من آورد و من با اون آب هیچ وقت پیر نمیشم و همیشه مثل امروز زیبا و جوون میمونم. آدمای حسودی که حرفای ملکه رو شنیدند به سرعت دور پادشاه رو گرفتن و تو گوشش گفتند که ملکه حرفشنو رو به حدی دوست داره که ورد زبونش فقط اونه حالا با این وحضل باید کاری بکنی و شر اون خلاص بشی پادشاه گفت اگر اینطوره پس اون رو توی برج بندازید و دست و پاش رو به زنجیر بکشید حرفشنو دستگیر شد و با بدگویی حسودان فتنهانگیز توی برج به زنجیر کشیده شد حالا اون تنها زندانبانی رو میدید که هر روز تکه نون و کاسه آب براش میاره اما جای شکرش باقی بود که گابریول که مرتب دلداریش میداد و خبرهای جدید رو براش میآورد پیشش مونده بود وقتی زیبای مو از سرنوشت شوم حرفشنو با خبر شد به پای پادشاه افتاد و گریه کنان از اون خواست تا حرفشنو را آزاد کنه قافل از اینکه هرچه بیشتر التماس می کرد پادشاه سنگ دل جدیتر می شد اون فکر می کرد که دلیل این همه خواهش و تمنای ملکه برای آزادی حرف اینه که آشقانه اون رو دوست داره به این دلیل به هیچ وجه حاضر نشد که اون رو آزاد کنه پادشاه میدونست که مرد زیبا و خوشاندامی نیست و ملکه هم به این دلیل اون رو دوست نداره. بنابراین تصمیم گرفت دست و روش رو با آب حیات بشوره و در زیبایی و جمال بی همتا بشه. بوتری آب حیات روی تاقچه در اتاق ملکه بود. ملکه اون رو تو اونجا گذاشته بود تا همیشه مقابل چشمش باشه. اما، یکی از ندیمه ها که میخواست انکبوتی رو بکشه، ناگهان بطری رو به زمین انداخت. بطری شکست و آب حیات روی زمین ریخت. ندیمه دست پاچه شد و نمیدونست که چی کار باید بکنه. توی این گیرودار به یادش اومد که توی اتاق پادشاه هم بطری مثل بطری شکست است. اون رو آهسته و آروم برداشت و روی تاقچه در اتاق ملکه گذاشت. قافل از اون که آب این بطری برای کشتن جنایتکارا استفاده میشه. به این صورت که به دستور پادشاه جنایتکاران به چوبه دار سپرده شدن، بلکه صورتشون رو با آب اون بطری میشستن و اونا به خواب همیشگی فرو می‌رفتن. پادشاه بی خبر از همه جا بطری رو برداشت، صورتش رو با اون شست و به خواب ابدی فرو رفت. گابریول سگ کوچیک که حرفشنو اولین کسی بود که موضوع رو فهمید. فورا پیش حرفشنو رفت و داستان رو تعریف کرد. حرفشنو از گابریول خواست پیش زیبای متلایی بره و روزگار اون رو به اون شهر بده. بابریال هم ساکت و بی صدا از میان حیاهویی که به خاطر مرگ پادشاه برا افتاده بود خودش رو به ملکه رسوند و گفت خانم ملکه هرشنه بیچاره رو فراموش نکن. ملکه بلافاصله فاصله بیاد خدمتهای عرزنده هرشنو افتاد. به دورت چشم همه به برج رفت. زنجیر رو از دست و پای اون باز کرد و تاج طلایی رو بر سرش گذاشت و شنل پادشاهی رو بر دوشش انداخت و گفت بیا حرف شنوی دوست داشتنی من تو رو به عنوان پادشاه معرفی می کنم و به همسری خودم در میارم بعد از اون مجلل ترین جشن عروسی جهان برپا شد و زیبای طلایی و حرف شنو سال های سال خوشبخت و شادمان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 قصرهای باشکوه و مهمانیهای بزرگ شاهانه قصرهایی <متصفيق> از سفرهای دور و دراز با پای پیاده سفر شاهزادهها و شاهان با اصفهای تندرو و جادویی به سرزمین ناشناخته